با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مرجیان عزیز تلویزیون رنگی کمان بخش دوازدهم زندگانی کسوی رو امروز شروع می‌کنیم. در بخش گذشته حضورتون ارز کردم که در نرشوشتر بود و صحبت کرد و نوشته که چگونه سپاهیان رضاخان به خوزستان آمدند و چگونه شیخ خسال رو گرفتند و به همراهی پسرش بردند به تهران خب قبل از اینکه وارد بحث بشم سخنان امروزم را باز منابعش و حضورتون ارز میکنم همین کتاب زندگانی من کسری که رو این ادامه میدیم راهمونو بعد این کتاب رو هم یک بار به شما نشان دادم ایران برآمدن رضاخان بر افتادن قاجار و نقش انگلیس‌ها سیروس قنی ترجمه حسن کامشاد از این مطالبی راجع شیخ حس که سخن ماست خدمتون عرض خواهم کرد یه مطالب دیگری هم از این یه کتاب تشیع و قدرت در ایران جلد 1 مربوط به رزاخان و رضا از این براتون انتخاب کردم خب قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشم میخوام ببینیم شیخ کی بود گفتم در گذشته بارها گفتم ولی متنوع باید زیاد گفتینارو اخیران من جاهایی شنیدم که گروهی از این آقای شیخ خزال حمایت کردند ولی واقعا بیطرفانه عرض میکنم بیترفانه واقعا قابل حمایت نبود همین الان خدمت رو از کرد و اولا شیخ خزل یکی از عوامل انگلستان بود و خوزستان را تحت نام عربستان اسلام مستقل میپنداشت و در نظرش رزاخان جرأت مداخله در کارهای او نداره در اون تاریخ انگلستان قدرت بود در خلیج فارس و در هندوستان قوا داشت در بصره قوا داشت در بغداد قوا داشت شیخ خسلم وابسته به اون بود تصور این رو نمیکرد که رزاخان بتونه با این حمایتی که این قدرت از خزئل میکنه بتونه این رو از اریکه‌ی قدرت به زیر بکشم. نکرده رزاخان به هر حال قدم وار داشت برای استقلال مملکت. جواب بگیم تمام نقاط مملکت قبل از رسیدنش آشوب بود. دانه دانه رضاخان اینها رو آرام کرد، ساکت کرد، اینک شیخ خزال در اونجا نشسته بود، قدرت داره قدرتش هم از یک ابرقدرت قدرت گرفته و عرض کردم به تصبرش کسی نمیتونه به این قدرت نزدیک بشه در مورد رابطه خزال با انگلستان من ای تحییه کردم حضرتون عرض میکنم. کنم در سال 1907 بین انگلستان و روسیه تزاری در سمپترزبورگ قرار دادی بستند. راجب ایران جالبه. هممون همون میدونیم. شما هم لابود میدونید. شنیدید. خیلی معروفه. ولی باز هم باید اینا رو تکرار کنیم. تاریخ ما، زندگانی ماست. ما رو تحقیل کردن اینا. دو تا قدرت داشتیم ارز کردم. یکی در جنوب انگلستان بود. یکی هم در شمال. روسیه تزاری بود نشستن هم دو هم تزاری نماینده انگلستان و نماینده روسیه در باره این حتی از ایران نماینده هم نخواستن ایران رو به سه منطقه تقسیم کردن منطقه شمالی شد مال روسیه احسان فرافا در داریم بار شده منطقه جنوبی شد مال این ایناهای انگلستان یه منطقه باریکی هم و وسط گذاشتن که از تهران رد میشود و تهران و اسمهان و شیراز اینا را هم گذاشتن برای به نام ایران باشه شما تصور بفرمایید در این قراردادی که گذاشته شد انگلستان در همون جنوب منطقه خوزستان را جز ایران نساب نهی برد. منطقه خوزستان رو جزء مستعمرات خودش به حساب برد خب حالا میام قدم به قدم ببینیم چی شد. در سال 1908 که نفت در مسجد سلیمان پیدا شد، احتیاج انگلستان به شیخ حسان خیلی فراوانتر شد. باید حمایت اونو جلب بکنه، بهش قدرت بده تا از لوله‌های نفتی حمایت کنه. امنیت لوله های نفتی رو حفظ بکنه انگلستان قرار دادی با خز بس که از عملیات حفاری محافظت بکنه خب اینم 1907 و گفتیم 8 و گفتیم 1909 قدم به قدم میاییم دولت انگلیس مقداری از سهام شرکت نفت را به به خزر این رایگان که به خزال میبخشه یعنی اون رو وامدار خودش میکنه یعنی اینکه دیگه باید از خزال حمایت بکنه چرا که خودش رو صاحب نفت مملکت ما میدونه لوله های نفتی یعنی هم مال خودشه حاصل نیست قدمه نیست. از جانب ایران یا هر کشور دیگه در اونجا به صلاح ادعای مالکیت بکنه خب بنابراین این رابطه نزدیک نزدیک نزدیک ادامه پیدا می کرد در سال 1917 انگلستان یکی از بزرگترین مدال هایش را به شیخ بخشید مدال C ای او به شیخ بخشید یعنی با این مدال دیگر مسئولیت هم داره کسی جرأت نداره به شیخ دست بزنه چرا چون مدال گرفته از جانب انگلستانه خدرتش داره. در سال 1919 انگلستان ضمن احدای مقادیر زیادی اسلحه به خزال احمد شاه رو وادار کرد که به او لقب سردار اقدس احدا بکنه این خزال در مورد این لقب خیلی افتخار میکرد در جلسات رو گذشته گفتیم که خوب نوشت که این الغاب رو هم حکومت ایران داده بود از سال 1919 عملا شیخ هزر جزو حمایت انگلستان بود پس ما برای چی؟ ایران کجا بود؟ نه نبود ایران یک کشور ضعیف بدبخت تحقیر شده ای بود که انگلستان و روسیه خودشون به سلاح دید خودشون منطقه خودشون بود است این رو جدا کردند. ما می‌دونیم که روسا هم کلایات فراوانی در تاریخ در شمال کردن در کیزان کردن در مازندران کردن در خراسان کردن در آذربایجان کردن خوب مال خودشون بود اینجوری تصور می‌کردم در این بین شیخ خزال از احمد شاه دعوت کرد بلند شو بیا بشین تو خوزستان بشین تو ناصری چون پادشاه مملکتی بلکه خزال تصور می که بلکه بتونه با بودن مرکزیتی در خوزستان قدرت رزاخان رو کم کنه چون میدونست که رزاخان شروع کرده و باید اون منطقه رو به ایران به مادر منطقه کنه که همون ایران باشه و همین مطلب رو هم به سرپسی لورن کاردار سفارت انگلیس هم گفته بود گفته بود من باید خوزستان رو از به سلاح به کشور ایران باز کردانم فکر از مسائل دیگری که وقتی رزا تصمیم گرفت که حمله کنه به خوزستان، انگلستان جلوش واستاد وقایه سیاسی اتفاق افتاد که این وقایع برای رضاخان مطلب رو، موقعیت رو سبک کرد تا تونست به راحت تر، راحتی و برحال اگم نمیشد به تصمیم داشت بگیره ولی به این وقایه اتفاق افتادن به نفع رزاخان یکی اینه که وقتی روسیه حالا دیگه شده شعرمی بیشتر شده وقتی ایران میخواد بره منطقهشو بگیره انگلستان میخواد مبارزه بکنه روسیه روسیه شوروی تهدید کرد تهدید کرد انگلستان وشیر خسال رو گفت برای رهایی خوزستان من قوا پیاده خواهم کرد خب ببینیم چی پیش میاد در این تاریخ شیخ خزال ارز کردم با کمک انگلستان تمام به اصطلاح قبائل اهد کرده بود متفق کرده بود با خودش و نظامیانیم هم از انگلستان گرفته بود و خودشو آماده کرده بود برای مقابله با رسا خان دستگاه خبرکزاری شوروی دست به تبلیغات زد و پاسخ تبلیغات بر ضد شیخ و حامیان او آنها را آملان توطعه شیطانی خواند و شروع کرد بر علیه آنها تبلیغات نمودند شیخ را متهم کرد که به مخالفان حکومت مرکزی پول داره تا از او حمایت کنند و واقعا پول فرست بود پول های کلانی فرستاده بود ما گفتیم که در گذشته چگونه با امین و سلطان و با مزفردینشاه و با مدرس و با همه اینا در تماس بود ولی در اینجا جرات نمیکنم بگم مدرس پول گرفته بود نه ولی به دیگران طول داده بود. او پیک هایی به پاریس فرستاده بود به نظر احمد جا عز کردم که ها وقتیخواای بلاششی بیای ایران بیا از خوزستان ستانت رو و باز، روسیه این پیک رو که خیلی محرمانه بود پرده از این مثلا مطالب ورداشت و دنیا رو آگاه کرد دست انگلستان بیشتر روبه شد از عواملی که موجب شد که رضاخان شانس رو برای گرفتن خوزستان یکی این بود که در این زمان سرفسی لارن میخواست ازدواج کنه بلا شد انگلستان کاردار سفارت انگلستان در ایران نماینده اون جانشین این شخص که در تهران بود پس از ملاقات با رزاخان رزاخان رو به اصطلاح قبول کرد منطقش رو در مورد خوزستان محق دونست رضاخان رو. رو و به همین دلیل به انگلستانم گزارش داد که آقا این آدم حق داره خوزستان خوزم مال خاک ایرانه مسئله یه دیگم این بود که گفتم باز در گذشته گفتم ارتور میلسپو که استخدام شده بود وسیق قوام سلطنه اینک رزاخان نخست وزیره قرار بر این شده که مالیات‌های های اقعب را بگیره یکی از کسانی که مالیات نمیداد، همین همین شخصال بود که از جنگ اول به این ور دیناری نداده بود گفتیم پایه درآمد آمد فوق رو که اون موقع داشت آقای میلسپو از شیخ خسال مالیات ها رو خواست های تندی نوشت بر علیه با اتکاب این عبر قدرت اونطوره فتح و گفت من آقا بیشتر از اونچه که شما میخواید هزینه پرداختم حالا چه هزینه بود؟ نمتونم برآل رزاخان در روز 13 آبان 1303 درست یک سال و یک روز پس از حرکت احمد شاه به اروپا احمد شاه در 12 آبان 1302 حرکت کرد رفت اروپا حالا یک سال یک روز گذشته حکومت رو موقتاً بخشید به محمد علی فروغی حرکت کرد به سوری خوزستان و نظامیانش رو جنوبتر از خودش فرستاد پیشوند <coughs> لورین که در این مسافرت در ماه اصل بود پس از شنیدن اینکه که بابا لشکرکشی شده داره میره مسافرتش رو ماه اصلش رو، رو تمام گذاشت با عجله با به حرکت کرد از پاریس گذشت و با احمد شا ملاقات کرد بعد از طریق مصر به سوی ایران حرکت کرد در احواز کنسولی بود به نام پیل کنسولی هنگلستان که این پیل به شدت از شیخ خزد حمایت میکرد و حاضر نبود رزاخان را صدا بشنوه هر اول کاری که کرد تلگراف زد به این آقای پیل سفرسی لورن که شما حمایت نکنید از شیخ خزد مسئله خیلی پیچیده بود یک نفر باید در این میان فدا میشد خو خب، اگر میخواستن با رزاخان در بیفتن میتونستن در اون تاریخ در بیفتن و از قدرت هم به پایین بکشن ولی خیلی مطلب پیچیده تر میشد سخن یک مملکت بود بنابراین انگلستان تصمیم گرفت که خسال رو در این میان قربانی بکنه و پس از این مطلب برای اینکه جنگ در پیش بود دستور داد همین آقای لورن یک گردان سپاه از هندوستان با سه ناوچه توپدار به بحث آمد. در تاریخ هفت نوامبر، یعنی شانزده سه روز مثل از حرکت رضااخان به سوی حکومت انگلستان رووض شد. رئیس حکومت انگلیس رئیس کارگری حکومت انگلیس که به شدت نمایت میکرد. از شیخ خزن عوض شد به حزب محافظه کار جاشت شد که رئیس حزب نخست وزیر اون مملکت فکرش سیاستش بهجز از همین حزب کارگر بود و در همین زمان هم حکومت, حکومت محافظه کار که حالا سر کار او اومده باخبر شد که بحلی روسیه تهدید کرده که اگر شما بخواید در مقابل رزاخان جبهه بگیرید من اواب پیاده خواهم کرد در خلیج فارس و به تمام این دلایل و با درخواست لورن و کنسل احواز رزاخان قبل از اینکه احواز برسه شیخ خزال ازش پوزش خواست روشنه وقتی حامی دستور میده پوزش بخواه این بنده و برده انگلیسه نمیتونه کاری بکنه باید دستور رو اجرا بکنه رزاخان روز پانزده آذر با خزعل در خوزستان دیدار کرد و در اوائل اردیبشت 1304 سربازان ایرانی وارد کشتی خ... و شیخ خزال رو به همراهی یکی از فرزندانش دستگیر کرده و به تهران فرستادند خب ما این مطلب و این بحثمون رو تا اینجا که حضورتون عرض کردم یه مقدارش هم اضافه می دیم تا تموم کنیم در همین حال از تهران تلگراف رسید به کسوی حالا دیگه برمی به خاطرات خود کسوی از تهران تلگراف رسید به کسوی که شما عدلیه رو از شوشتر برگردانید به ناصری طبیعی است عدلیه باید در مرکز اون منطقه باشه در اون تاریخ چون ناصری قدرت خزال بود اجازه نمی داده در اونجا برقرار بشه حالا دیگه قوزستان به کشور ما ملحق شده خسالی هم اونجا نیست حاکم نظامی داره آقای سرتیب فضل الله. خب بنابراین دستور بر این رسید که عدیه رو برگردید به ناصری کسیدی خب طبیعتا کار سنگینی بود شروع کردن در ناصری زمین مناسبی ساختبان مناسبی برای دیگه پیدا کردن و با تمام وسائل و کارمندان و همکاران از شوشتر حرکت کردند به ناصری ولی وقتی به ناصری رسیدند دیدند که کار غیر از اینه لزامیان غضا نمیدن که در این منطقه در ناصری ادلیهای باشه چون خودشون محکمه درست کردند و به قول خودشون به درد مردم میرسند میخوان حکم بدن و از این مسائل که در محاکم انجام میشه بنده سخنانم رو سخنان این بخش دوازده رو در اینجا خاتمه میدم و امیدوارم که همیشه بیننده خوب این برنامه باشید و تا بخش سیزده از شما عزیزان خداحافظی میکنم